اگران ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرگند و بخارارا به ده ساقی می باقی که در جنت نخواهی آفد کنار آب رکناباد و گلگشت را، عقان کن جولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا من از آن خسن روزفزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلی خارا. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکر خارا. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سادت من پند پیر دانا را حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو که کس نکشود و نک شاید به حکمت این معمارا قزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک اقد سریا را